داره مهربان می‌آورد بجای ای که بعد از گناه کسی بره ب... بجای خدا به دیگر پناه ببره و خدا رجوع کنه تا گناه شبیه خدا را پر مهربان می‌آورد بجای ای که تلاش کنه تا کسی ازو دفاع کنه در دفاع ازو مجادله و خصومت کنه ایره بگذارد، توبه کنه. از خدا مختلط بخواد تا خدا گناه رو بیامرد جز خدا هیچ کسی نمیتواند کسی را دیگری را از پاداش بدی گناهش نجات بده و من یک اثمن اثمند فا اینما یک سیبوه اعلانده گناهی کرد پس فقط به ضرر خودش گناه کرد. وكان الله عليما حكيما وخدا داناي حكيم ومن يكسب خطيئه او اثما وهركي خطا يا غناي ثم يرمي به بريئا بعد يا انسان بي گناهر برو تو بس باي اتحام به سوی کسی دیگری متوجه کرد. دیگری با اتحام زد. فقد احتمل بوهتان و اثم مبینه فس یقینن که بوهتان و گنای اشکارای ایره برداشته است. با دوش خود متقیب گنای وزی و بهتانش. اگر شما کسی را به گناه یاد کردین در غیابش که در وجود داره این را غیبت و اگر کسی را به چیزی یاد کردین که در او وجود نداره این را میگوین بختان بین بختان و غیبت ترکمیست در مورد یک کسی صحبت میکنه در غیابش راست میگوی ولی عیبایش را بیان اعبای یا کسی در غیابش ای غیبت اگر او گناه در وجود داره، تو در غیابش ایر بیان میکنی، ای غیبت و اگر در وجود نداره، با او یتهام مبندی ایر میبون بود ولولا فضل الله عليك ورحمته لحمد طائفة منهم ان يدلوك اگر فضل خدا برتنا میبود بود رحمتش حتما یک گروه یا از ایشان اراده کرده بود که تورا بیراه کن دلاشتا با امین منافق تورا بیراه ببرن یک قضاوت غیر دلعه دلعه عادلانه در مورد او داشته باشد تلاشتا یک گروه امین بودن امین آودن دفاع میکردن دلائل ارامی کن چرا تا تورا در این معامله و بیرعبه بنا و ما یا دلونه ایلا انفسه و گمرانه نمی مگر خیشتن در و ما یا من که و به ایچیزی تو را جانمان نصدن و توید صدمینه بطابه و انزل الله عليك الكتاب و خدا بر تو كتاب نازل کن و الحکمت و و علمك ما لم تكن تعلم و عموغت به تو آنچه را و کان فضل الله عليك عظیمه و بر تو فضل بزرگ خدا، عزم. تو مشمول فضل بزرگ الهیت الله خیره من نجواهم. در بحث از نجواه سرگوشی هایشان خیر نیست این سرگوشی ها اکثر از خیر خالیس اگر در شری شرع چرا مخفیانه چرا واضح و افکارانی حتما, حتما از خیر خالی است که میری سرگوشی میکن در اکثر از سرگوشی های اینا خیر نیست. الا من امر به صدقتی مگر که به صدقه عمر کرد مخفیانه به کسی گفت برادر عمید یک نفر بسیار فقی و است اگر مخفیانه با او کمک کنی نجوا کردی واقع نفر او معروفن یا به کار نیک عمل کرد فی کسی در گوشن یا کار نیک با او و در جمع نگفت ما با دایی یک نوی احساسی یهانت نکن مخفیانه برش کار خوبا نشان داد و را تشویح کرد با کار نیکو معروف او اصلاح بین الناس یا برای اصلاح مردم برای با. اصلاح مردم حتی میتانی دروغم بغوی مخفیانه میری به ایک طرف نیکی ای رادر مکی و دی رفتم خوبی در رابطه باتو شنید بار کنیم که ایت عرفی بدی در باری تو خیلی دن می کرد، می اوند که آدم بسار خوب است آدم نیکم، چی کنی مال با او یک درگیر شدیم در ایک مشکلی؟ بسار آدم رو بسار ستایش میکرد، ستایش میکرد او دیگه هم برای، من دورا دیدم، تباری تو ای چی بازی نداشت بسار تو رو تاسیت میکرد، بسار خوب می زد و می کنید که رای بری هنی مشکل پیدا شد اگر دری تو صورتا دروغم گفتی معنی ندار نجوا دری سی صورت اشکال نداره میشه دری خیره باشد در غیره دی اکثر از نجوه ها از خیر خالیس عمر به صدقه به معروف و اصلاح بین مردم. و من یفل داری که ابتغاء مردات الله فصوف نوتی عجر ندیم هرکی ای بر بری جسجوی رضای خدا کرد بس اتمن بر او پاداش بزرگی هرکی همی سی کار کرد عمر به صدقه به معروف و اصلاح بین مردم. افساد بین مردم ببترین بدترین است انسان به هلاکت میکشن کشند انسان اصلاح بین مردم درای پاداش بزرگ و اگر از خدا می مناسبات داخلیتان، تان و ذات البینیتان اصلاح کن و فیانبران آمدن تا مناسبات مردم اصلاح کن هر کی کار بکنه به صدقه امر کرد و معروف امر کرد و بین مردم اصلاح کرد بر رضای خدا فاضل بزرگ رحم خدا بريون جناب و وما يشكر الرسول من بعد ما تبين له الهدى و از پیغمبر مخالفت کرد با پیغمبر مخالفت کرد من بعد ما تبين له الهدى بعد ذكي هدایت برایو کو وعده شد عالم دار ويتبع غير سليل المؤمنين و غير از غير رای مؤمنين رای مؤمنان را گذاشت برای مستقلی برای من شد شد هر که از جماعت مسلمانان دور شد کناره شد در آتش سکوت شیطان همیشه گوستنده را که از گله تنامانده، از رمه تنامانده، یا به خستگیش عقب مانده یا به دلیل نفرتش هست برفتن برو جمع و به هر دلیلی که عقب مانده شیطان او را می رو باند شیطان گرگش میشه. می و او را می کنه هر که از جماعت دورمان ماند میشه. سلمان باید در یک جمع زندگی کنه در اکیز حضور یک حضب بردار و امیر بیعت عرب داشته باشد و در جمع مسلمانان زندگی کن تنها نه، منظری نه و را... رای شاز انتخاب نکن مسلمانان بر چیزی توافق کردن از ما کن از سواد ادم کن و فرام بلستان می که امت ما بر گمراهی جمعه نمیشم پس شما بر خود لازم بگیریم که با سواد عظم باش، با اکثریت باشد شما یک نمونه را دیدین کتی که از فیصلی مسلمان ها عدول کرد انجامش چی شد در جنگ اوها؟ اونا چی کار کرده باید؟ از پیسری مسلمان ها کرده باید چرا خدا اونا رو مناطق می خانده؟ که با نفاق نزدیکتران از چی؟ از پیسری مسلمان ها نوزل کرده ایسا بگن اربان کنیم؟ غیر صدیلی المؤمنین و جز رای مسلمانان دیگری پیدا با بر چیزی که مسلمانان اکثریتشان اتفاق کردن بجایی که به پیش دیگری را خود انتخاب ما تولا و چیزی که خودش انتخاب کرده سمت و جاته. با مون حوالش کرد. ما با مون طرف این متوجید بس این با مون و نسلیه جهنم و به جهنم در دوزخ در و ساعت مسیر و چی بعد جایگاه از این معلوم میشه که مخالفت با مسلمانان کار ساده نیست جایگاه انسان جهنم میشه. فاصله از مسلمانان مخالفت با مسلمانان فراه المستقل ربار الخد انتخاب كنان و في مسالي سعاديني إن الله لا يغفر عن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشع يكيناً كخدا نميع مرزد إلك نسبة شرک خدا نمی امرید ای که کسی با خدا چیز دیگری را در اولویت و ربوبیت شریک کن گناه شرک خدا نمی و یخترو ما دون دالک لمن یشع و غیر ازی سوایی را می امرزد برای ارکی بخواه انشان لیدتا که غیر از شرک سایر گناه را خدا نمی برای هرکی بخواه پس اعتقاد معتزله به اینکه فقط در صورت عدم اعتقاب کبائر خدا از تغایر را میاموردن نه کبایر را این درست صریعه؟ در همی سوره میگینیم خدا همه گناهان در جز شرک میاموردن اگر گناه میتنه انسان به سوی خدا برگرده و خدا برش میاموردن وَمَنْ يَوَشِقْ بالله فقد دَلَّهُ دَلَالًا بَعِيدًا وَهَرِكِ نِسْبَتْ بِخُدَهَ شَرْك بِبرده پس یقیناً که با گمراهی بعیدی از حق گمراه شدی در پدگاه عمیقی گمراهی فاصله دور از حق سقود کرد از حق خیلی دور ربتن و در گمراهی سقود کرد این یدون من دونه الا اناتا نمی پرستن جزوه مگر زنان هکثراً بطای دارتن که مجسمی زنا بود، و قضا و مهنات و نائلات این اصلاً مجسمی زنا بود، بصورت زنا یادگار زنات، یا بصورت زنات حی مروزاً فکر شما رو پا برین، شاید یکی از خصوصیات زندگی غرب امیر ببینید که همه مجسمان زنات، و قطره داخل میشن همه از مجسمان زنات، از صورتهای برهنه بشکلهای مختلف و محسن قطره بسرق مجعله تاریخی به همه این رو واضح به تشمی می دهید <تصفح> مشرکین هم فقط زنا رو پرستش می کنید و نمی پرستن مگر شیطان سرکش و این یدعون دعا می کنید می تلدن یعنی می پلست. دعوت پرستش متراده است با کمک می طلبند در پالویش فرخم میکنند و با پایش می یکتند دعا در واقع اینا شیطان نمی پرستند در اصل اینا بطارند نمی پرستند شیطان نمی شیطان می تصور به اونها القا کرده این معبوده قادر به رفع شما دعای شما را میپذیره در اونا اوناس شیطان پیروی کردن حرفش را پذیرفتن و به این ترتیب شیطان رای اینکه قرآن میفرمایه کسی را دیدی که حوای خود را اله گرفتن یعنی چی؟ هوا را اله گرفت از هوای خود پیروی میکنه بندی هوای خودت، است پرمانبردار حواس خود است معنی کسی خود تونیست که هوا و حواس خود مثل یک مجسمه بسازر بعد در برابر و سویده کنند پیروی و اطاعت همین عبادتی هوا و حواست تو گوه شیطان عبادت کردن. موتی پرمانبردار شیطان و پیروی از شیطان دستور و هدایت شیطان در برابر بط افتیدند در واقع اونا شیطانا میترستند لعنه الله الا شیطانا مریدا مگر شیطان, شیطان سرکش لعنه الله خدا برو لعنت کرد و قال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا و گفت حتما سوگند یاد کرده بود که حتما از بندهایت سامه معیان خود میگیرم گفته بود که من حتما بلایت رو گمراه میکنم در هر قدمی برایشان بکمیل میشنم و اونا رو به گمراهی میکشم می و سام و نسیبی خود رو به دست دارم ولو, دل، ولو دلنهم و حتما ایشان رو گمراه کنم ولو امنینهم و حتما برای اونها تمانیات ایجاد کنم ها رضوهای فهمبر اسلام یک روز خطای کشید یک مرابه در بین مرابه خطا به شكل بعد یک خط رو از سر مربع آغاز کرد و از طرفش کشید از طرف داخل شد و طرف برامله گفت این عمر انسان و خطوط هوادث است که انسان با او مواجه نیست، که هر کلامش ممکن است که به مرگش با بنابولی شد از بنابول و این خطه که از بیرون وارد بی چوکات شده و بعد از برامده این انسان آرزوی انسان بیش از زندگی شد و شیطان بر انسان تمانیات کرد آرزوهای دور و دراز. حتما اونا را برشان او رضوها ایجاب میکنم به حضرت آدم علی سلام چی گفت؟ اگر این شجره ممنوع بخورین چی میشین؟ همیشه در جنت میمونید زندگی جایدانه و مسیح و مقام ملک و فرشته ها میرسین همانیات روید همیشه شیطان شما رو به گناه تشقیق میکنه با یک آرزو حکمی کنید که این سرائه رسیدن به خداف آرزوهای دروغین پریدنده همی چیزی بر شما آراسته می گناه را بر شما آراسته می سون مزیعن کار بدر بخل را آرایش می جبن را آرایش می نفاق را آراسته می کار بد آراستا می سون آرزوهای بر شما ایجا نیست ولا لآمورنهم با اتمن اونا امر میکنم فلا یبتکن اعظان الانآمین فسا اتمن بشکافن گوش های چارپایان در هیوان را بنامه نظر میکردن گوشش قطع میکردن کنش معلوم شو کی نظر پلان بطر و یا مثل کمیال معمول است گوش ایوان رو میبرن عظیم رو شد این کار باید نشد و لآمورنهم و حتماً اونا عمر کنم فلا یغیرن خلق الله ف خلق خدا را صورتهایش تغییر تغییر صورت آن خدا حفره چیست؟ خال خال میرن رنگ میکن پیشانیشان دستایشان کمرشان دیدیم که علی بدماشا خایل چه ها اکفران فینای خود های چی دستایشان خال میرن اسلام میره ما نکرم حتی میکندن موی از آب غیر باریک ساختن، یعنی معموله، است قیدر همی زمرنی هست و تغییر داره چیزی که خدا افرید در مواردی که خدا اجازه داده، و چیزهاییست که ما حلق ناخونا را می قطع و مهاره را کتا می کنید می در موارد جایز همه جایی که اسلام دین مشخص کرد ولی تغییر در آنچه خدا پریده عظیم امانت شد این هم کار و از شیطان فیره بی مکنید و قسم یاد کرده که شما را حتما گمران میساد با وجود گمرانی عرضوهای دروغین را بر شما القام میکن شما را وادار میساد تا در خلقت خدا، در آفریده های خدا تغییر دیارید چیزی که خدا آفریده زیبا آفریده و مرد ریشت دادن دیباییست و اگر آبرو نمی بود حالون از که ساتی قلبت مالون می شود کسی که سرش موی ندارد وارزوی بزرگش شنید که خدا برش موی بده آبرویش بسودن مجاهش بسودن خود مالون بینیش قطر شد، چیز تر ملون نیست، گوشش بریده شد، چیز نیست، کم شدن، چرا، چرا با یک کمبود یک چیزی زیبایی صدم همی بیدن؟ به یه متوجه باشین که خدا در همه زیرو روح نر زیباتر از ماده همه دی همه ای پرنده ها رزنید نر بمراتب زیبا تر از ما دارد بهد نمایان که قبل مقیسه نیست و در انسان ها بمیتلید اگر از زایی زیبای شناسی به نرد و زن توجه شود انسان می را درک کن ولی اگر از شهوت باشه که با سرک کن در همه زیروح شما میبین که نر زیباتر است از ما به ترتیب در انسان ها. زن احساس کمبود می کند می خواهی همین کمبود با چیزای دیگری جبیره کنه با چی؟ بازی ورگ با سرخی، با سفیدی رنگ کردن ها، مر لباس با لباس رنگا مرد چرا عساس کمبود میکنه کند؟ لباس خشم درست چرا؟ چرا weird کمبود میکنه و زن احساس کمبود میکنه کنند، خود کمبود خودا می خواهی جبیره کنه, پوره کنه. با چي پوره می کنه با زیور با آرائش با لباسې رنگه خب سرخي و, و سفیدي باي جبران, جبران میکنه و قرآن میتاوم کې و در و در آرائش رشد می کنه زن در آرایش رشد می و, و به این ترتیب همو احساس کمبودیش جبران مېشه یک چیزی کم داره که در پی جبرانش شما باید می بینیم که با می خاطرت که سعی کنه که کار بکنه که توجه مرد جلب کن. همه یه آرایش انگیزی تغیید در ساختار خودش چیزی که خدا زیبا باور کنیم که کردن تراشیدن ریشت برقم از نیست بود نیست که گوش شکت نیست عبرویش بسوزن رو و ولی چطور کنیم که انسان درک مرد خود مثل زن سختند زن خود مثل مرد سختند исلاموازاش شدیدند بمانت کرد زن ها باید مثل زن مردان مثل مردان. یکی مثل زن ها مردان. و مردانی پروشیدند پوشیدن لباسم زن اقنا دار لباس مرد را باید لباس شایسته خود را با مرد نباید لباس زن را بپوشد الان شما می بیرون که برای می بینید مرد می که تلاش داره که اکتای زنانه داشته باشد تیافیش لباس زنانه داشته زنان رو میبینی که میخوای خودم مرد میسته با اسلام مماند بوتتا هم باید از مرد زن. زن میگوی بوتایت زنانه باشد مرد میگوی که مردانه هر کدام لباس خدا شد فا اداء قضایتو مسلاتا وقتی نمازتانو بمی شکل ادا کردید به نیش شکلی که به شما الله قیام و قعودا و علا جنوبكم خدا را استادو و نشستو و بپهلو یاد کنیم لما لیکی بپهلی خود دنیم در احر خدا را زیاد یاد کنیم فیدت ماننتم فاقیم السلاع و چون مطمئن شدین برپا دارید نماز. این تفصیل امور آئیی که قبلا گفته بودیم بایتان است؟ محافظوه على الصلاوات و صلاة الوستا امر گفته بودیم که صلاة الوستا چیست؟ این پاین اینجا بیانی است اگر مشکل نمازتان عدا کردین خدا را در هر حالت یاد ولی در حالت اطمینان، فاقیم السلاة نماز را اقامه کنید اما نماز کامل، را پیدا فیدا تو مصلاح گفتن این نماز را ادا کرد ولد اینجا گفتا فاقیم السلاح السلاح را اما مکمل را اقامه کنید بر پادر قصر و علت, اتمنان. بشكل مكمل علت بود اقامی سلاح به مکمل مکملش. در علت اطمینان نماز به شکل مکمل اقام. کنید در علت خوف میتنید در قصر بود اون جنبه متطور بر نمازهایتان نگهداری کنیم مخصوصا نمازی میانه و برگزیده و خوب بهترین نماز نگهداری کنیم و اگر حالت خوف بود پس پیاده و سواره در حالت خوف میتانی نمازتان به تک مکمل نباشه یادو سوارمی نماز ولی در حالت اتمینان امن باید نماز مکمل باش این الصلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقود یقینا نماز هست بر مسلمانان فرض در وقت مقرارش نماز موقود است وقت مراهات وقتش لازم است بدون اوز نمیتانی از وقتش را به تخیر بندازد جماعت لازم است در حالت جنگ جماعت. در حالت جنگ نماز میخوانه معناه کی؟ موقوت موقود است اگر موقود نمیگود بعد از جنگ فارغ میشود در ایک جایی حالت اتمنانی میخوان اما اگر در حالت جنگ وقت نماز رسید باید باری نماز بخوانید. در وقتش بخوانید. اگر وقت شرط نمی بود می که بعد از حالت خوب باید که می دو سی روز شکرش جا اما چون موقود به وقت است و این خاطر است که در حالت جنگ هم باید بخوانید. اِنَّ السَّلَاتَ کانت علی المؤمنین كِتَابَ مَوْقُوتَ در جنگ احتمال داره شرایط پیش بیایی که را قضا کنیم در که از جنگ ها می میتطیب نماز قضا شد همه اش شد نماز قضا بعدا میشه در حالت جنگ شرایط طور پیش بیاید که در وقتش اش نتونیم نتانیم قضا داره میشه قضایی بخاند اما در غیر ازی، در حالت اطمینان کتاب موقوته است. فرض است با تاین وقتش باید با مراعات وقتش نمازر بخانی ولا هنو فی ابتغای القوم و در جستجوی دشمن قوم کافر سستی مکنی این تا تعلمون اگر شما دردمند می شود و این یعلمون پس یقین نشان هم دردمند نشان که ما تعلمون چون شما دردمند می شود و ترجون من الله ماله یرجونه و از خدا چیره امیدوار است که اونا امیدوار نیست. شما به خدا امیدوارهایی داریم، خدا ایمان داریم امیدوار که خدا شما را تعیید کنه، حمایت کنه و عجر به شما بتن شما در امید پاداش اخردی را نزد خدا داریم اونا که ای امید نداره پس دلیل وجود دارد که شما احساس شه. و کان الله علیمن حکیما و خدا دانار بحکمت است درانی مسئلت بزرگ است که همیشه باید در پای دشمن باشید لازه از اونا از تحقیب دشمن باید سست نشد ان انزلنا الیک الكتاب بالحق یکینا ما بسوی تو كتابي براستی نازل کردیم لتحکوم بین الناس تا مردم حکم کن به معراک الله پانچ خدا بتو نشان شید که خدا به تو تعلیم کرده به‌اصالتی در روشنایی بین مردم بکو و لا تكن للخائنین خصيما خا... و برای خائنین مدافی مباش خاطر دفاع از خائن خصومت مکن منافقین در صدر اسلام وقت مرتکب گناهی میشدند تلاش میکردن که بانه های پیدا کنند تا از جزا نجاب بیاید حتی دیگری را متهم قرار میدان یک بار حدیثی رخ کسی از منافقین رفت از کسی دیگری دوزدی کرد سلایش با چیزی از آن. جوال سرخ شب وقتی آرد رو صیخانی خود بود در آرده افتاد. او متوجه شد یه ربع بود در خبخانی یهودی. بعداً صاحب مال تعقیب کرد آمد بخانی. و انکار کرد مدت زیاد خانیش تلاش کرد تیز نرفت. در تبخانی. یهودی اونجا رفت او گفتی ای با ما امان ردی شبه و او انکار بالاخره قومش هم آمدن عزیبت پاپ پردخت این ملامت نیست آدست خانه یهودی برامد یه جهبی رمالامش دروب نید تیه هم انکار می کرد قومش هم عزیبت پاپ پردخت بالأخير هكي قط معلوم شد في عمر رسلم بنته يهودي فيسالك و درميره بتسكي يهات ناظر شد يدينين؟ ولا تكن للخائنين خسيمة مضافي خائن ما باش واستغفر الله و از خدا مخفرات ان الله كان غفورا رحيما يقينا خدا او مرزقار ميربان ولا تجادلن الذين يخطئون عن فساد وجدال ماكون از طرف کسانی که با إن الله لا يحب من كان خوانا اثيما یقینا بخدا ها خائن گناهگار و دوستا من الناس از و لا استخبونه من الله و از خدا نمیشه را و هو معهم در حاله که او بایشان است، اذ یبیتون ما یادا من القول وقتی که شبنگام در مشور خود قولی را که خدا او را وقتی شبنگام با هم مینچی نمیپسند مشور آی بر که خدا او را خدا در محلطن بأناس وكان الله بما يعملون محيطة وخدا برانش ميكونا نبيهاتكا ها أنتم هؤلاء شما عقام جادل <تصفيق> باز مجبور شو کنیم متألک نیم تاکی کار گفتار در درست بگوییم چی می‌کنیم؟ آیا دکم میخوام بازش کنم یه بار. خودت هم کنم شروع کردن نه قد در دفت در روسی و در جریان جنگ آمده فهم ما ممانیت هم لکه اما باقیه ممانیت صورتی در ما خدا مثل با میار نیست بود او میار نیست اونا موزیک بودم وش موزیکی از در جزا هم چیز اختلاف موزیک بزارتن اونا موزیکی موزیکی از کریدم وارد موزیکم میترد مزمار در اونجا بکارد او ای من القول ایلا من ظلم و کان الله سميعا علیم خدا دوست ندارد عشقار کردن سخن بدر با قول سو بیان کردن و عشقاقه کردن سخن بدر خدا دوست نازم الا من ظلم مگر کسی که مورد ستم و ظلم مقرد <تصفيق> بری مظلوم مجاز است که شکایت کنم داد و فریاد مظلوم مستثنه است در غیر دید. شما از سخن بد خودداری کنید خود. خدای را دوست ندار و کان الله سمیع نالیم و خدا شنواي دانه است می داند مظلوم است و که مورد ستم قرار گرفتن او سخن بد با صدای بلند گفتن و هر حرفای شما را میشنوی خدا میس پس معاملی شما با خدای شنوای داناست از جهر از جهر سخن بد از آشکار کردن سخن بد خود دارید دشنا هم گفتن کسی دیگه ای را به بد یاد کردن و تبلیغات سو از همه اینا هم ممانعت سرک کرد خدای را دوستانه مگری که کسی مورد شتم پرار گرفت چون خدایی کسی را بالتر از توان و طاقتش مکلف ننید مظلومة بره هل اقضاع خود بره ك شكاعت خوده بره مرجي درسانا بره ازو مجاز ان تبدو خيرا او تقفوه او تافو عن سوء فان الله كان عفوا قدير اگر ويدا كنيت کار نیکه یا پنهانش کنید او تعفو عن سوء امیاز سوء و بدی بگذرید افکنید فإن الله کان عفو عن قدیرا تسقیناً که خدا افکنیدی تواناست بجایی که تبلیغات سوء داشته باشند کار نیک بکنیم کار خیلی اگر نمایان و حوایدار باشن زنان باشن یا از بدی کسی بگذاریم خدای عفت کنندی توانا عجر و پاداشی را این عطم میکنیم که از مظلوم را هم تشویق میکنه به یکی عفه کنه ولی عفه عفه مظلوم باید انگیزیش دو چیز نباشه زوف و ناتوانیش یکی و نشوه که بایی عفه باعث تشجیی بیشتر ظالم و سفنگر شد با مراحطی عفو کن می انتقام بکش و عفو کن می که که عفوی باعث تشجیه بیشتر ظالم و سفنگر نمی شد ولی اگر باعث تشجیه ظالم و سفنگر میشه شد باید انتقام بیتر است زیرا قرآن از در جای دیگری هی رو توصیف کردن در مورد توصیف مسلمانان هم وقتی مورد ظلم قرار گرفتن انتقام میکشد هم انتقام در جایی که شما دیدین اپ شما باعث میشه که ظالم و سفمکر مزید تشجیب و تشویق شود باعث باعثیت ظلم و ستم بیشتر شود در اونجا انتقام <تصفيق> ولی جایی که دیدین اف مفید است اف باتا وجود با محل و مورد در ما تصمیم با جای تبلیغات سو شما کار خیر بکنید و یه اگر خوبا ادا باشه اپنهان فا ادا اپنهان خدای سمی و علی میداند به حضر نمیرود خدا فاداشه را انات میکنه این الَّذین یک بالله وَرسُولِهِ كسانه بخدا و رسوله یقینا کسانی که به خدا و پیانبرانش کفر میگود و یریدون این یفرقو بین الله و رسوله و میخوان بین خدا و پیانبرانش تفریق کنن به خدا ایمان نیا و رملی به پیانبرانش نه با ایدی از ایمان میاورن ولی با دیگری نه اینای که بین خدا و پیانبرش میخواین تفریق کنن میگوین و به بعد، به برخی ایمان میاورن و نفر ببعض و برخی دیگری کافر مشن و یریدون ان یتخذو بین ذالک سبیلا و میخواین که بین ای رایر بر خود انتخاب درالکی به خدا و به همه پیغمبرانش بدون تفریق ایمان دارد. رأی وسط رأی دیگری جزئی یافتنش اینا میخوان که رأی دیگری رو برای خود جستجو کن در حالی که رأی دیگری وجود نداره. اولئک هم الكافرون حقا نشان حقا که کافرند بدون شک کافر. در کفر اینا شک شکند. که از یک پیانبر انکار کنه و از یکی از پیانبر انکار کنه کافر. چرا سبه کسی که خدا پیانبر تفریح کنه پیانبران تفریح کنه و برخی ایمان بیاورد برخی دیگر کافر شا اینا بدون شک کافر. و اعتدنا لکافرین عذاب و مهینه و برای کافران عذاب رسوا کنندی محایا کرده انجام ای کافران عذاب است موهین و رسوا کننده ولذین امنوا بالله ورسوله معانن کہ بخدا ایمان آوردند و در پروفیانبران است ولم یفرقوا بین احد منهم یعنی ب... هیچ یکی از تفریق نمی کنند با هم پیامبران بلا استثناء ایمان دارند برای هر از تاریخ پیغمبر مبعوث شد دعوتش ایمان می آوردند پیغمبر را تایید می کنند ولای کسو گروه حتمان پاداش شانده بدی و کان الله غفور الرحیم و خدا آمولگار مهربان مردم دو در رابطه با معاملیشان با از زاوی تعصب میمید و ایدی بدون تعصد، آسانی، باز، و سراغ حق نید، هر جا حق را یافتن تایید میکنند، با ایمان نید، هر داعی حق را حمایت میکنند، ولی بی دی دیگری دی نتعصیدند، و سازی های خاص دعوات را و داعی را در برخیره که از قوم شد، دشته و پیوند او دارد، و منافی او را میکنه، می اون ایمان اهل الكتابه اهل الكتابه اهل می آورن بری دیگرار انکار می کنن درابطا با هم می که معامله انت قرار یسألو که اهل کتاب اهل کتاب از تو می از تو می خان انتو نزل علیهم کتاب من السما که کتاب را از آسمان بریشان نازل یک نوشتی را انوانی او از آسمان بیاریم از اونا مجیزه می خواست تاکه ما کتاب را به چشم خود ندینیم که از آسمان پاین می و نامی انوانی ما حاضر نکنیم نامی از آسمان بنامی ما فروض نی ایمان نمی آید فقط سعلوم موسا اکبر منزانی از موسی چیزی بزرگتر زی را خواهد فقالو ارین اللہ خدا را بری ما اشکاران شاند از تو که اینا فقط کتاب که تو میگوی بر تو نازل شده آسمان ناز بیدنن بی که در اوراق از آسمان یا یک نوشتی بنامینا که اونا بوین که این فیامی بنام شما انوانی شما از آسمان نازل شده ای پیام برا تصدیق کنین بدعوتش ایمان بیاورید. تا زمان که نامی از آسمان نیاری با تو ایمان نمیاریم از موسیٰ علیه السلام چیزی بزرگتره گرخواست گفتن خدا را بر ایمان عشقارانشان بر هم فا اخذتهم السائقاتو به سایقه و اونا بنا بر ظلمشان فرا ثم اتخذو العجل من بعد ماجاعت هم البینات بعد گوثاله را بپرستش گرفتن من بعد ماجاعت هم البینات بعد از اینکه بینات واضی روشن و نمایان برایشان ها با وجود موجزه با وجود دلائل نمایان پس از مشاهدی همه دلائل, دلائل دیدین که گوثاله پرست شد فعفونا اندالک هذی بنارشان گذشتی عفو کردن و آتاینا موسا سلطان مبین و موسا غلبی سری و نمیان دارید حضرت موسا علیه السلام محمد پتشانه پارچه پارچه کرد سلطان به دریان دارد ببینی معاملی اینا با حضرت موسانی سلام از چی قرار بود؟ با هم ایون رشانه ها و مجیزات نمایان ایمان ناودید و رفعنا فوقه هم و تو بی میثاقه و تو بر بری ایشان برداشتیم فوقشن، بالایشان، برای گرفتن عهد و میثاقشن دورات را نمیتدردن، نمیدردن، عهد نمی نمیدردن و به ای خاطر تور بر ایشان برات راشده و قلنا لهم ادخل الباب سجده و گفتیم بر ایشان که دروازه های و شهر سجده کنان درائید و قلنا لهم لا تعدو فی سبتی و بر ایشان گفتیم که در درواز شنبی تجاوز نکنید. و خبنا منهم ایتاکن غلیده و از ایشان پیمانی محکمی و سواری گرفتن نمونه از شکنی ها و کفر و بني اسرائیل را حساب میکند در سوری بقرم و تفصیلات ایرادی. فبما نقدهم ميثاقهم و کفرهم با الله پس بنابر شکستن پیمانشان و این بیات الله و بنابر انکارشان نسبت به آیات الهی کفرشان نسبت به آیات و قتلهم الانبیاء بغیر حق بکشتنشان پیغمبران خدا را بنا حق و قولهم قلوبنا غول و گفتارشان که دل ما در خلاف و پرده است بل الله علیها بکفر نین نیست بلکه در واقع خدا بردلهای ایشان مرکو بیدن بلتبع الله علیه بی به سبب کفرشان فلا جؤمنون الا, الا قلیل بس ایمان نمیارن مگر اندکی و بی و قولهم علی مریم بوتان عظیم و بنابر کفرشان و گفتارشان بر مریم بوتان عظیم اتراکن سبا لث مريم ونفى وقولهم إن قتلنا المسيح يسبنا مريم رسول الله وقطارشان كما مسي بسر مريم را في عم بر خضار كشت وما قتلوه وما صلبوه ورنكشتن بدار نياضيختن ولكن شبه لهم بلکه برایشان مشتبه شد اشتباه کرد. و اینا در کفرشان به او حد رسیدن که حتی پیغمبر خدا عیسی پسر مریم را تصمیم درفتن به قتل او را زندان زنده و تصمیم درفتن را بکشن قتل حضر ابروزی که همه جمع شده همه شاهده اعدام حضرت ایسا و ولی خدا قبل از حضرت ایسا را اینا بدار بیا بیدن بکشن بلا برد سوی اصمان اینا داخل شده کسی دیگی را کشتن و بدار سدن بعد دو اشتباه شد اونا که را کشتند؟ که را اگر ایسا را کشتند، بس کسی دیگری که اولین کسی تو وارد خانه شد زندان، او کجا چی واقع شده؟ دقیق از الفاظ قرآن نمیتونه ولی حضرت ایسا علیه سلام را اونا نکشتند، بدر نزدند، قبلن حضرت ایسا علیه سلام خدا برداشتن معلوم میشه که با روح و جسدش برداشتن الفاظ طوریست که نشان سریعه حضرت ایسا علیه سلام به طور مکمل برداشتن مخصوصاً احادیسی را بیشتر توزیمی کن حضرت ایسا علیه سلام بالا را فیلن در اولین آسمان قبل از قیامت پایین مید و بعد با دجال می جنگند و دجال به دستی و به قتل میرند احادیث را واضح کرده که همه داری اتفاق بود دار. هیچ کسی داری را بزن. اختلاف ند و ما قتلوه او را نکشتم وما سلبوه ربدار نظرا، ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه في شك من وإقينا كسانيكم لرباري هو اختلاف كذا، ذر شكًا. أستجوبني قيادة سذر شكًا. نميطًا. رأي واحد ندارن، هر كذا منا رأي مختلف ذا. ما لهم به من علم نسبت به علمي نظره هيك علم نظره إلا اتباع الظن مجال في ربيع الغمان وما قتلوه يكينا يكيناً كي أورا بل رفعه الله إليه بل كي خداه ربسوه خد بلاه وكان الله عزيزاً حكيماً وخداً غالبي بحكمته عزیز است. بعد نه و تشويش و سوالات باید جواب بوي بر خدا صنم كه كسره زنده، از زنین بسوي آسمان بالا بره. چون خدا غالب است عزيز و حكيم، حتما در ديكارت هيکمتي. وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ونیست هیچ اهل کتابي مگر قبل از موتش باو ايمان قبل موته دوتت بمارم اتحابه یاد هر یکی از اهل کتاب قبل از موت خودش به حضرت ایسا در آخرین لحظات زندگی خود قبل از موتش حالت را میبینه که عقانت حضرت عیسیٰ برش یا مرادیس یا ای قبل از موت حضرت عیسیٰ علیه سلام با ایمان در در حضرت عیسیٰ علیه سلام دنده دوباره میعه تمام احل کتاب که در وقت دنده با ایمان دنده وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَ وَرُزِ الْقِيَامَةِ بَلَيْشَانْ قُوَا وَشَهِيدَ بَلَيْشَانْ قُوَا وَشَهِيدَ فَبِذُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا بِنَابَرِ سِتَامِ يَهُودِهَا حَرَّمْنَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ حَرَامًا كَرْدِينَ بَلَيْشَانْ تَعْكِ و به سده من سبیل الله و بنابر امتناعشان از رای خدا کثیران زیاد یا مانی شدنشان از رای خدا بسیار برخی از چیزها بر بنی اسرائیل حرام شد چیز الال که بر بنی اسرائیل حرام شد آیا مراد ایست که قیدی از احبار و رهبان بر اینام مسلط شد و اینام چیزایرا در دین خدا اضافه کرد. حلال خدا را حرام کرد. و مراداً که فسادجاریرا در دین داشتند. احبار و رهبان و علمایشان حلال خدا را بر آنها حرام شد. مرادی یا مراد چیزایرا که حضرت یعقوب ازو امتنامه برسید نظر کرده بود بعد اولادیشان نسبت به این نظر پابندی کردن و یهود ای در کتابای خود به عنوان حرام گرفتند لالکه حرام نبود، حلال و یا چیزا که بر اونا بدلیل غسیان و سرکشیشان حرام شد حلال بود، خدا بر حرام مثل حیوانات ناخوندار مثل چربی، گا و گسفند برونه حرام شده یا <تصفح> مراد ایسی، میشه عرصی که با طرق مختلف چیزای حلال برونه حرام شده. دلیلی حرام شدنها ظلم خوده بود جهودی و به صد منصدیل الله و بنابر صد شدنشان یا مانی شدن دیگران در, را در رای خدا خودشان از رای خدا امتنان میبردید. دیگران دیگرانم مانی شد. و اخده همون و خوردن ربا گرفتن ربا و سود و قد نهو انه در حال کذیر نشان میتا که سود در تورات هم حرام و مليونه سود نخود و اموال الناس بالباطل و خودنه اموال مردم بباطل و احتدنا للكافرین منهم عذاباً قليما و برای کافرانشان مو عذاب دردنا کرم نشانه بود که امیه تدای که باعث نزول عذاب بر بنی اسرائیل شد مورد غذب خدا قرار گرفت و مورد نفرین و لعنت قرار گرفت. اینا مختص به اونها نیست با مای دیگری هم دیماری پیدا شد منتظر همی عذاب یعنی ظلم حلال کردن چیزی حرام شمردن چیزی حلال خودداری از رای خدا صدخوری و اموال مردم را بناحق کردن این ها سکوت بینی اسرائیل و نزول عذاب بر اقام لیکن نگار ثابت قدمانشان در علم والمؤمنون ومؤمنانشان يؤمنون بما انزل الیک ایمان میآورند به آنچه به سوی نازل شده و ما انزل من قبلك به آنچه قبل از تو والمقيمين شده و المقیمین والمقیمین الصلاه و نماز و المتون و به اندگان زکار و بالله و لوم الاخير و ایمان آبر اندگان خدا و بروز آخر اولایی که سنو تیهم عجر عظیم ای گرور حتما پاداش بزرگ از جملی اینا کسانی که در علم مستوار و راسخن و مؤمنا و انچه بسوی تو نزل شده با قبل از تو نزل شد همه ایمان نواز و کسانی از اینا که نماز برپا می دارند، زکات می بیهند و خدا به روز آخرت نیمان می آورند گروه زود است که خدا پادرش عظیمی بهشان امده اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا إِلَى النُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْبَعْدِهِ یقینا ما به سوی تو وحی کردیم چنانچه به سوی جنوح و انبیاء بعد از وحی کردیم ای چیزی تازه نیست بلکه اگر بر تو وحی شد، بر قبل قبلستان بر نوح علیه سلام و بر همه انبیای بعد از نوح علیه سلام خدا وحی ترستان وحینا الى ابراهیم و اسمایل و اساق و یعقوب و الاسبات و وحی کردین بسور ابراهیم و اسمایل و اساق و یعقوب عليهم السلام و الاسبات و بر اولادیشان وإيسا وآيوب ويونسا وبسوية عدد إيسا وآيوب وآيوب وآيوب وآيوب وسليمان عليه السلام وعطينا داود زبورا وبا زبور دار ورسولا قد قصصناهم عليه وفا يامبراني كي برتو هكاية كذين داستانا عشانا برتو هكاية من قبله قبل و رسولان لمنقصوص هم علیک پیامبرانی که داستانشان بر توی کارت نگه یک تیدادی پیامبران در داستانشان در قرآن آمده ولی تعداد زیادی پیامبرانی که مبعوث شدند جز خدا کسی از اون آمده پیامبرانی زیاد دیگر هم علاوه بر که کفیشان در قرآن آمده مبعوث شد خدا پیامبرانی زیادی را مبعوث کرد که داستان ایدی در دا کتابش در قرآن آمده ویدید داستان دیگران در دا کتاب و کلم الله موسا تکلیمه وخدا با موسا تکلم کرد در کوئی تور وعضرت موسا سلام تکلم کرد رسولا و ومنذرین لئلا یکون للناس علا الله حجه پیامبرانی بشارت دهندی بی بیندهنده لا یکون یكون للناس باشد برای مردم علی الله بر خدا حجت بعد رسول هیچ حجتی بعد از پیامبر پیامبر اتمام حجت است جای که پیامبر مابوظ شده دیگر هر نوام حجت به اطمام رسید هیچ دلیلی برای مزدوم نمی که به خدا ایمان نه و سعوت پهانبرها را این برای اطمام حجت است کسانی با متوجی که با پهانبر مخالفت کنند متوجه باشند که دیگه حجت خدا به احتمال بسیار منتظر اعذاری را هدف از بعثت پیامبران چیزی است که, که دیگر برای مردم هیچ دلیلی باقی نماند. خدا هیچ دلیل دیگه از انسان نمی‌پذیرد. خبر نبوده، مطلع نداشتیم. تهنمایی ماسورت نگرفت. خوب، برای ما معلوم نشد. خدا هیچ دلیلی را بعد از بعثت پیامبر خواهد پیانبران زیادی پرستادر شده شما که دعوت پیانبر علیه السلام چیزی عجیبی تلقی میکنی مخالفت میپردادیم به مخالفت میپردادیم مگر ندیدین که چی پیانبران مبوض شده اونار که شما هم قبول داریم شما قبول داریم داری که حضرت موسی علیه السلام پیانبر و خدا با او تکلم کن حضرت ابراهیم علیه السلام و اولادیش همه را قبول داریم به او ایمان داریم ادعا نیکنیم اولادی ابراهیمی پهانبرانی زیادتی بعد از نوح علیه سلام پهانبرانی که کسیش آمده کسیش کساش یا یعنی نامده همه پهانبران مغوشون و کان الله عزیزن حکیم و خدا غالبیش با حکمت در بحثت پهانبران حکمت است و متوجی باشین اگر بعد از اتمام حجت خدا یعنی بحثت پیانبران دیگر بازا به خدا فاصله زیاد نداریم خدای عزیز و خدای که غالب است کسی هم نمی تاند از ماخذی و نجات دید لیکن الله یشهد بما انزل ایلیک یکین خدا قوائی می داد با آنچه بر تو نحضل کرد انزله بی علم بی علم خود رفتر استاد آثار علم وسیه خداره در کتاب او میاد. سراغ سر مبتنی بر علم، حرفش جمله جملیش مظهری از علم وسیه خدا. آثار علم عمیق، علم خداره در کتاب میاد. درعا لتبع هارنا سليك قرآن باس دارا يميز انك باس نهاية الدقيق وليه والملائكة يشهدون وملائكة ها مشاهدات مياه وكفى بالله الشهيد وقراب انوان الشهيد وهو الكامير إنا الذين كفروا يكينا عنانك كفروا ورديدان وصدوا عن سبيل الله و باز داشتند از رای خدا یا خودشان از رای خدا امتناه ورزیدند قد دل و بعیده یقینا که گمراه شدند با گمراهی خیلی بعید از حق از حق بسا دور رفتند و در گمراهی عمیقی فرو رفتند اینلگینا کفرو یقینا آنان که کفر ورزیدند و ظلم و ستم کردند لم یکن الله لی لهم خدا نیست که بیشان ایشان بیامردن و هدیه هم طریقا و که برای اونا راه را نشان بده اونا را هدایت نمیکن اونا را مخترت نمیکن کفر بعد از کفرن خوب ظلم کردنه خوب در کفر خود فرو رفتن تشدد در کفر ای سنت خداست کارشان بجای می رسی که دیگر در دلاشان مور کو بیدن نیشن نه توفیق توبره با اونا اینا بکن در واضح های هدایتن برویشان بستن نیشن هیچ طریق رو با اونا نشان نمی داد الا طریق جهنم مگر رای جهنم خالدین فی ها عبداد جا بدانه داران برای همیش و کان دلک الله یسیر بر خدا ای آسان است ای که وارد جهنم کنن و برای جهنم اینا را پیش ببرن سقوط کنن در جهنم برای همیش ای بر خدا سن یا ایوه الناس و ای مردم قد جاکم الرسول بالحق من ربکم براستی پیانبری به سویتان پیامبری که حق را با خدا من ربی کم از سوی پربادگار تا فآمین و خیرن لکن ایمان بیاریم بیتر از تا که از سوی خدا آمده و حق را آورد از جانب پربادگار تا دي پیانبر چیزی دیگی نداره با خود جز پیانی از سوی خدا سراسر حق آمین فس بإمان ذهب إبراعاً بيترس وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وإن كفر ببرزد كافر شد فس يقين أنت در أصمانها والزمين هست خدار لله فس خدار هست يقين ما في السماوات والأرض أنت در أصمانها ودر زمين همه و کان الله علیما حکیما و خدا دانای با حکمت کفر شما به او صدمه از ملک او نمی شما باعث نمی شود که از قدرت خدا چیزی بکه که از ملک او چیزی کم شد نه خدا مالک اصمان ها زمین يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم أي أهل الكتاب در دين تان غلو ولا تقولوا على الله إلا الحق ونقولي نسبة بخدا مگر حق در شعن خدا جز حق نقولي نشان ميتة كه أهل الكتاب در دين غلو نكون يعني أكي أز مصيبتها أهل الكتاب احل کتاب قبلی هم کتاب امروز هم. هر احل کتاب در دین خود غلو میکنه چیزای را به دین می و افراد در دین چیزهای را از خود افتادن به دین غلو در دین در دین تان غلو ما و چیزای را به خدا بستن خدا منصوب کردن از سوی خود و مصیبت دیگر است. همیشه مردم چیزی را بر دین می و به خدای را منصوب می کنند در حالی که خدا را نگرد. چیزی را در دین اضافه می کنند در حالی که جز دین نیست. از خود اضافه می در دین و چیزایی را از خود به خدا منصوب کردن چیزی است که اعل کتاب مبتلاعی شدند و خداوندشان را می فرماید که ايالي كتاب الدين تقولونه ما كنید و بعض در شعن خدا چیزی ما گوید مگر حق إنما المسيح و ابن مريم رسول الله مسيح إيسا ابن مريم فقط پیانبر خلاص إنما فقط فنه وكلمته. وكلميه القاها إلى مريمك بسوء مريم بلا القاها أفغان. وروح من وروحي از جانبه روحي است از جانبه خلاه چند صفت حضرت عيسى بسار مريم استياك رسول خداست دو کلمی اوست فقط با یک فرمان کن آفری باشد فرمان دوستوری خدا صادر کرد به طور العاده و پوکلاده پو بدون پدر به دنیا این کلمه بسوی مریم افکان داشت و روحی از, خود. از جانب خدا در همه ما هم روحی در کالبود ما روحی هست خدا یعنی روحی که خدا فرید در مادنی در در حضرت عیسی علیہ السلام هم یا با توجوب ای که روحی پاکی و روحی امتیازی بود به خاطر خدا بندشان با انوانی روح من روح القدس روح پاک زهد. و در مردها میده مید زنده میشت قلبت از فرنده رمی ساخدار و میده مید فرنده فرنده زنده میشت فا آمنوا بالله و رسول خدا و پیانبرانش ایمان بیعوید وانا تقول ثلاثا و نقول سی گویا سی خدا خدای پدر، خدای مادر، خدای پسر این کتاب بالاخر کارشان بجای رسید که حضرت عیسی را به علوهیت گرفت گفتن یا عیسی علیه سلام خودش خدا بود که روح در جسد عیسی حلول کرد آمد به دنیا و برگر یا یکی از سی خدا خدای پدر در آسمانا، خدای مادر عزیز مریم با خدای پسار حضرت ایسا نگویم سی خدای کنین برایت هم بیتر اینما الله اله, اله واحد خدا فقط خدای واحد خدا یکیست دو گانه جی خدا خدا یکانه سبحانه این یکونه له ولد پاکیست او را که برای او پسر باشه و از اعیب منازه است داشتان پسر یک عیب است پسر است موجود موجود نمیتانه که بقایش تعمیل شرطت میشه کسی که بری بقایش به پسر ضرورت داره او داره خدا از از عیب منظر، خدا پرتر است، خدا را دی که او داره بلعب باشه الهو ما فی و ما فی اما چیزی از ها و زنین از اوست او است، را آنچه در آسمان ما است، در زنین است کفا بالله وکیلا و خدا به انوان وکیل و کارساز کافیست خدا کارساز همه هستی و همه ایستیر نگاه میدار همه ایست عزوز و وکیل همه ایستیست نگاه دارندیش و کارسادش خدای که همه ایست و زمین عزوز و کارساز همه و از ایده مناظره که داره به سر